افسونه افسانه با نام و یاد خدا سلام افثانه ها داستانهایی که گاهی واقعی و گاهی برآمده از تخیل کسانی هن که پیشترها زندگی می کردن. داستان داستانهایی که سینه به سینه روایت شدن تا به دست ما رسیدند. افسانه ها بخشی از هویت فرهنگی یک کشور یا یک سرزمین هن که آداب و رسوم و سنن اون ملت ها رو برای ساگرین روایت می در این برنامه میخواییم یکی از افسانه‌های های کشور کره رو براتون روایت کنیم افثانه ای که در دلش درس مهم می داره و اون درس رو با داستانی شیرین به ما گوش زد میکنه افثانه ای به نام دنگون که از کتاب افسانه‌های های کره، کوره نوشته زورنگ این صوب شده و جمشید سلطانی هم ترجمه این اثر رو به عهده داشته شما رو به شنیدن افسانه دنگون دعوت در گذشته‌های خیلی دور در کشور کره پسر جوانی به نام هوانگ هونگ زندگی میکرد هوانگ هونگ جوانی باهوش و مهربون بود و با پدرش که پادشاه آسمان ها بود زندگی میکرد یکی از روزها پدر هوانگ هونگ دید که هوانگ هونگ غمگین و ناراحت در بوشه این نشسته چی شده هوانگ هونگ؟ حواسم هست که چند روزی گرفته و ناراحتی اتفاقی افتاده؟ نه پدر ناراحت نیستم خوب از چرا گوشگی رو منزوی شدی؟ حتی با من هم که پدرت هستم حرفی نمیزنی؟ دارم به رویاهام فکر میکنم خوبه فکر کردن به میتونه بهت انگیزه بده که حرکت کنی و به موفقیت برسی پسرم درسته؟ اما با خودم که فکر میکنم میبینم محال رویاه های من محقق بشن تو هیچ وقت اینقدر ناامید نبودی؟ میدونی چیه پدر یه روز از یه مرد فرزانه شنیدم که میگفت رویاه هم باید باور پذیر باشن امه. من وقتی بال نداشته باشم نمیتونم رویاه پرواز در ذهنم مجسم کنم خب اگر تو غایی میتونی دو بال برای خودت بسازی تا وقتی که رویاهات رو باور نداشته باشی نمیتونی موفق بشی؟ میدونم اما اما رویایی که در سر منه خیلی بزرگی پدر میتونم بپرسم چه رویایی تو رو اینقدر درگیر کرده؟ من رویای پادشاهی کره رو در ذهن دارم هرچند میدونم که رسیدن به این رویا غیر ممکنه چرا غیر ممکنه؟ چون من پادشاه کره نیستم در حقیقت کره از آن من نیست که بخوام پادشاهی اونو بایدو بگیرم اگر درست متوجه شده باشم منظورت اینه که دلت میخواد از آسمانها به زمین بری همینطوره پدر من دلم میخواد روی زمین به زندگی مدام بدم و به آرزوها برسم بسیار خوب پس بس خیلی واضح و بیهاشیه به من بگو که از من چی میخوای. اگه خواستم و بهتون بگم از دستم حسابانی ناراحت نمیشین نه هوان کنگ تو تو این همه سال نشون دادی که جوان باهوش و توانمندی هستی پس خاستهات از روی بازیگوشی و شیطنت نیست حالا بگو از من چی میخوایی؟ ازتون میخوام شپقاره زیبای کره رو به من ببخشید پدر بعد از اینکه که کره به تو بخشیده شد میخوای چی کار کنی؟ پادشاه دادگری بشم میخوام با نیکی و عدالت بر مردم سرزمینم حکومت کنم بسیار خوب از امروز تو پادشاه شفه قاره یک میشی هوان دلم میخواد مثل یک مرد بر تخت سلطنت تکیه بزنی و به مردم سرزمینت فرمان روایی کن خوی میدم پدر ازت ممنونم اینها پادشاهیش پقاری کوره رو به پسرش هوان کونگ کرد و هوان رو در حالی که سه مهر آسمانی و سه هزار گل به همراه داشت به زمین فرستاد هوان زیر درخت مقدس فرود آمد و همانجا بر تخت پادشاهی نشست اون سه وزیر داشت پرنگیگ وزیر اعظم عبر بود اوسا وزیر اعظم باران و اونسا صدر اعظم باد هوانگ همونطوری که به پدرش قول داده بود با عدل و داد در سرزمین کره حکم رانی کرد تا اینکه یک روز از پرنگیگ وزیر اعظم ابر خواست که به دیدنش بیاد در خدمتم صدرم جناب پادشاه هونگ, هونگ بابان عمری داشتن؟ پرنگیک خواستم به دیدنم بیای تا منو از اوزای مملکت باخبر کنم به عنوان وزیر اعظم ابر باید بدونی در این سرزمین چی میگذره. به لطف پادشاه خیرتمندی چون شما همه چیز در امن و امان یعنی در هیچ ایالت و ولایتی گله و شکایت و غم و اندوهی نیست. نه ناظران مردان به کشاورزی و دامداری مشغولند و زنان به خانداری و پرورش فرزند از کران تا کران این سرزمین صدای شادی و امید به گوش میرسه. این خیلی خوب پرنگید. اما موضوعی چند وقتی که من ناراحت کرده. چه موضوعی سرورم مدتیه که یه خرسوی ببر رو میبینم که هر روز تا های درخت مقدس میان و با تضرع آرزوهایی میکنن که معلوم هنوز برآورده نشده اگه قرار باشه تو این سرزمین همه آرامش داشته باشن حیوانات هم باید از آرامش بهرمند بشن همین طور سرورم من هم به چشم خودم اون خرص و ببر رو دیدم و برات مهم نبود چرا اونا این اندازه ناراحتند متاسفم سرورم دلم میخواد فورا به قاری بری که اون خرس و ببر زندگی میکنند بعد هم اونا رو با خودت به اینجا بیاری ولی سرورم ما نمیدونیم اونا تا چه اندازه میتونن به انسان ها نزدیک بشن خرس و ببری که بی محابا خودشون رو به درخت مقدس میرسونن و به انسان ها نزدیک میشن قطعاً بیازارن پس خیلی زود همراه چند سرباز به جنگل های اطراف برو و اون خرس و ببر رو پیدا کنه با خودت بیار. اطاعت میشه سرورم یون روز پرنگیگ وزیر اعظم ابر همراه چند سرباز راهی جنگل شد و به دستور هوانکونگ دنبال خرس و ببر گشت. اونها بعد از ساعت جستجو خرس و ببر رو پیدا کردند. پرنگیگ پیام هوانکونگ رو به خرس و ببر گفت. خرس و ببر اول کمی ترسیدن که ما با تو انسان ها برای اونها نقشه کشیده باشند و قصد کشتنشون رو داشته باشند. اما وقتی متوجه صداقت پرنگیک شدند همراه پرنگیک و سایرین راهی شدند و به درخت مقدس رسیدند یعنی جایی که هوان بر تخت پادشاهی تکیه زده بود پادشاه به سلامت باشم سربازان من و سربازان زبدهی که همراه هم بودم اون خرس و بب رو در قاری در دل جنگل پیدا کنیم و با خودمون به اینجا بیاریم خیلی خوبه به باید سردار. این هم خرس و ببری که فرمودید به دیدنتون بیان سلام جناب, جناب پادشاه به به سلام خوشحالم که دوباره شما رو میبینم مگه شما قبلن هم رو دیدی؟ بله خانم خرسه من هر روز از روی همین تخت تو و جناب باب رو میبینم که خودتونو به درخت مقدس میرسونین و با تضرع چیزی رو آرزو میکنید. بخوش شانسیه ماست که به چشم پادشاه اومدین. شاید از خوش شانسیه من جناب برمی. خب از طرف بگذاریم. دلم میخواد حرفای شما رو بشنوم و بدونم چرا هر روز اینقدر ناراحتی رو با تضرع نامه میکنید. دلم میخواد بدونم آرزتون چیه که هر روز به خاطر اون آرزوتون از دل جنگل به انجام گفتن راز دلمون ساده نیست جناب پادشا مهم نیست رازتونو به من بگین شاید تونستم کمکتون بکنم تو بگو ببر مثل اینکه خانم خرس روی حرف زدن نداره گفتن راز دل منم ساده نیست سرونم ولی من از شما خواستم به اینجا بیایین تا از مشکلتون با خبر بشم دلم میخواد کمکتون بکنم اجازه رویدین من تو ارز کنم سربرم من و خانوم سال در قاری در دل جنگل زندگی میکنیم اما حالا دیگه از این که خرس و هستیم خسته شدیم و دلمون میخواد انسان بشیم خدا یه من دلتون میخواد انسان بشید چون این چیزی نیست. برای همین من جناب ببرز گفتن راز دلمون شرم داشتیم جناب وزیر چطور فکر کردین شما میتونین انسان بشین و انسان ها زندگی کنیم؟ میتونیم آرزوی بزرگیه بزرگ و غیر ممکن ولی هیچ وقتم نامید نشدیم و هر روز با انرژی بیشتری خودمونو به درخت مقدس میرسونیم و از درخت مقدس میخوایم که کاری کنه تا ما انسان بشیم ولی اشترگورم چون این چیزی عملت غیر ممکنه با صبر هر چیزی ممکنه پرنگی اینو همیشه یادت باشه منظورتون منظورتون اینه که ممکنه من و جناب باب انسان بشین سر برم. معلومه که ممکنه خورم خیرس البته بازم میگم با صبر میتونید به آرزتون برسیم من که باورم نمیشه چطورتون این چیزی ممکنه سر برام ما حیوانیم و سالحاس با خوی حیوانی زندگی آه. کردیم اگه سور باشی به چشم خودت میبینی که میتونین انسان بشین البته من بیست عدد سی رو کیسه جو به شما میدم از شما میخوام که اینا رو بخورین و برای مدت 100 سال در غارتون پنهون بمونی. تو این مدت اجازه ندارین از غار خارج بشین بعد از این که این مدت رو پشت سرگذاشتین شما انسان میشین یعنی یعنی بعد از 100 سال منو و بب انسان میشیم سر برن. بله خانم خرس البته یادتون باشه که لازمه که شما صبر پیشه کنیم حتی اگه در 99 همین سال از غار بیرون بیاین باز هم به آرزوتون نمیرسیم علی، بله، علی، بله، این کنی ساده اینیست ست سال بله، موجتت دلوقتي. خیلی زیاده. سربرم تحملش ساده نیست ساده بله نیست. نیست در عوض خواسته شما هم خواسته ساده نیست جناب پرنگیک بله خور با. فورا دستور بدید 20 سیر و یک کیسه جو به جناب بابر و خانم خرس بدن با خودشون به قار ببرن. اطاعت میشه سفار. خب حالا میتونین به قار برید. صد سال بعد شماها را کنار همین درخت مقدس خواهیم دید. خیرس و ببر بیس هب سیر و یکی گرفتند و به طرف قار رفتند خیرس طبق قولی که به هونگ, هونگ داده بود با صبوری تمام در قار پنهان شده بود و به امید روزی بود که به صورت یک انسان در بیاد و از قار بیرون بره اما تحمل اون شرایط برای ببر ممکن نبود <تصفيق> آه. آه. بوی سرم رفتی را نمیشینی جناب باب از وقتی که بیدار شدی مدام داری تو خواهر را میری من نمیتونم مثل تو و سبور باشم خورم خیرسه من حسلم سر رفتی این قار لعنتی خب منم حسلم سر رفت اما،, اما امیدوارم که یه روزی برسه من انسان بشم و بتونم به شکل انسان از این قار بیرون برم فقط با این رویا میتونم سختی ها رو تحمل کنم چقدر ساده این خانم خرصه مگه چون چیزی ممکنه چطور ممکنه یه بابر با یه خرص بعد از 100 سال که از قار بیرون نرفتن به شکل انسان در بيان؟ ولی پادشاه هونگ هون به ما قول داد که این اتفاق میفته من به قولی که به داده اعتماد دارم اونانو ببخش. ولی من به اندازه تو خوشبین باشم. خب، آب... حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوام از این غار برام بیرون. آه؟ <تصفح> چی داری میگی؟ ما فقط میذید که از قار بیرون نرفتیم. به همین زودی خسته شدیم. آره، خسته شدم. خیلی هم خسته شدم. فکر می کنم یه روز دیگه هم بتونم تو این قار بمونم. باز زود چی میشه؟ تو همیشه میگفتی دلت میخواد یه آدم بشی و آدم بری تو مزرعه کشاورزی کنی میگفتی دلت میخواد گند و مجوب کاری و استواج کنی و بچه های زیادی داشته نامش همش رو یاسم آدم بشیم صد سال که هیچ هزار سالم تو این قار بمونیم من ببرم تو خرس اینو بهت قول میدم اگه اینجوری فکر میکردیم چرا هر روز با من پیش درخت مقدس می اومدی و آرزو می کردی که انسان بشی؟ من آرزو می کردم یه شبه و به هیچ سختی و مشقتی انسان بشم نه اینکه صد سال تو یه قار بشینم و از قار بیرون نرم بعدشم ببینم انسان میشم یا نه؟ خب پس می از غار بری بیرون؟ آره آره من دیگه تامون ندارم توی این قار بمونم تو هم دیر یا زود خسته میشی از قار بیرون میری نه جناب بب من با خودم عهد کردم تو صد سال دیگه از این قار بیرون نرم نه گشنگی نه تشنگی نه گرسنگی هیچ کدوم برام مهم نیست مهم اینه که با صبوری میتونم به آرزون برسیم همین خیال باش خانوم خرسه من دارم میرم تو هم اگه یه روز از این و از خسته شدی از قار بیرون زدی. به دیدنم دیا من میرم به جنگل انبوهی که پشت اون قلعه است من رفتم اینو شتاب زده تصمیم نگی بهتر خوب فکراتو بکنی زم کن زم کن با قبر که نتونست در قار بمونه از قار فرار کرد و رفت اما خرص همونطوری که به هونگ هونگ قل داده بود در قار موند و مسمم شد تا برای 100 سال از قار بیرون نره اما بعد از بیست روز در نهایت تعجب دید که تبدیل به زنی زیبا شده خرص که از خوشحالی به وجد آمده بود با عجله از قار بیرون رفت و خودش رو به درخت مقدس رسوند سرورم، از چیزی مکدری؟ جناب هوانگ ها. شما نخوش نه ولی، نه. ولی گهگاه به نقطه خیره میشین و در فکر فرو بیرین آه سردی میکشین، اینها یعنی ذهنتون مکدر قربان مکدر نیستم، ولی... ولی چه؟ پرنگیگ، امروز زن زیبایی را دیدم که به نزدیکی های درخت مقدس اومده بود و دعا میکرد آه. بله سرم من هم اون زن رو دیدم تو اون زن و میشناسی نه سرم تا به حال اونو در این سرزمین ندیده بودم میدونی چیه مدتهااس من تصمیم گرفتم ازدواج کنم تا فرزندانی داشته باشم و قلمرو حکمرانیم و, و گسترش بدم امروز با دیدن اون زن به اون دل بسته شدم دلم میخواد دلم میخواد یه بار دیگه اونو ببینم و بهش پیشنهاد و ازدواج بدم. مبارکی غربان. به شادی و میمنت. شادی و میمنت زمانی به تحقق میرسه که من بتونم اون و ببینم و ازش خاستگاری کنم. نگران نباشید سردارم. اگر به من اجازه بدین خیلی زود نامون نشانی اونزن رو پیدا میکنم و ازش میخوام خدمت شما بیام خیرس که حالا زنی زیبا شده بود به نزدیکی های درخت مقدس رفت پرنگیک به او نزدیک شد و به او گفت که پادشاه هوانکونگ قصد داره اونو از نزدیک ببینه خرس قبول کرد و همراه پرنگیک به دیدن هوانکونگ رفت با من امری داشتین جناب پادشاه دیروز شما تا نزدیکی های درخت مقدس اومدین درسته بله سرورم برای ساعتی هم زیر درخت مقدس نشسته بودید و دا میکردید درسته بله سرورم میتونم بپرسم چه آرزویی داری نه سرورم گفتن این راز بران مقدور نیست بین ما غریبهای نیست میدونم اما برای یه زن گفتن این راز ممکن نیست بسیار خوب به من بگو ببینم تو ازدواج کردی؟ نه پس پس میتونم به شما پیشنهادی بدم چه پیشنهادی زر برم؟ میتونم ازتون بخوام که با من ازدواج کنی؟ است... با،, با شما زر بله من وضعیم رو دنبال شما فرستادم ازتون بخوام به اینجا بیان تا به شما پیشنهاد بدم با من ازدواج کنید من... من باورم نمیشه سرورم یعنی یعنی من با شما ازدواج کنم و شهبانون سرزمین کره بشم همینطوره اگه با من ازدواج کنیم شهبانون کره خواهید شد خب من،, من من به درخواستتون جواب مثبت میدم من،, من با شما ازدواج میکنم سرورم با شما ازدواج میکنم مبارکه سرورم مبارکه <تصفيق> بعد خیرس که حالا شهبانوی کره شده بود با هوانکونگ ازدواج کرد اما هوانکونگ هنوز هم دلش می‌خواست که بدونه شهبانو چرا قبل از ازدواج به نزدیکی های درخت مقدس می‌رفت و دعا می کرده. برای همین هم تصمیم گرفت در این باره با اون صحبت کنه شهبانوی من من و تو مدتیه که با هم ازدواج کردیم زندگی خوب و شیری داریم اما به همسرت میخوام ازت سوالی بکنم که دلم میخواد صادقانه بهم به جواب بدی خیلی تو ناسوده باشه سرورم هر از ازم بکنیم صادقانه جواب میدم میتونم ازت بپرسم قبل از اینکه ازدواج کنیم برای چی میومدی که ناره درخت مقدس و دعا میکردی و بعد هم گرگه میکردی بله سرورم من اون روزا با تمام وجود آرزو میکردم که مادر شدن رو تجربه کنم مادر شدن؟ بله سرورم. من یه زنم با احساس زنانه یه زن دلش میخواد احساس مادرانه را هم تجربه کنه دلش میخواد به بچه ای که از وجود خودش عشق ببرزه بچه ای که خودش به دنیا میاره و خودش بزرگ میکنه بسیار خوب میتونم صداقت رو در حرفات حس کنم آه. حالا حالا اجازه میدین من حقیقتی رو براتون بگم چه حقیقتی؟ یادتونه چند وقت پیشی خرس و یه ببر مدام میومدن کنار درخت مقدس و آرزوهاشون رو به اون میگفتن بله یادمه یادم هست که اون آرزو میکردن انسان بشن همینطوره بعد هم من کیسه ساجو بهشون دادم ازشون خواستم تا 100 سال دیگه خودشون در قار زندانی کنن و بهشون قول دادم که بعد از 100 سال حتما تبدیل به انسان میشن بله همینطوره خب این ماجرا چه ارتباطی به زندگی ما داره اگه اگه من به شما بگم که من همون خیرسی هستم که پیش شما اومده بودم، باورتون میشه؟ خیرس؟ نه نه نه چون این چیزی امکان نداره شهبانو باور کنن سرورم من من همون خیرسی هستم که بیست و یک روز بعد از اینکه خودم تو پنهان کردم. تبدیل به انسان شدم ای... یعنی یعنی تو بله من همون خیرسم خیرسی که صبر کرد هرچند سبرش یکصد ست ساله نشد اما حتی اگه صد سالم طول میکشی تو اون غار میموند تا تبدیل به یه انسان بشه باورم نمیشه ولی ولی چطور چنون چیزی ممکنه از اون روز حالا فقط چند هفته میگذرم درسته اما من بی تردید قصدم این بود که تمام سال و صبر کنم. با اینکه ببر صبرش تموم شد و از غار فرار کرد، من همچنان روی قولی که به شما خودم داده بودم موندم. صبر کردم، ورسنگی و تشنگی و تحمل کردم و ای که آیدم شد این بود که زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم انسان شدم. پدرم همیشه میگفتادم آدم های صبور نتیجه شیرینی از صبرشون میگیرم همینطوره سرورم. وقتی هم که انسان شدم درم میخواست حس مادر بودن رو تجربه کنه تا اینکه شما به من پیشنهاد ازدواج دادیم خوشحالم شهر خوشحالم که من هم موز سبرم رو گرفتم ازدواج با زن خیرت من دو مثل مثل تو بهترین موزی بود که در زندگی گرفتم حالا هم با تمام وجود از درخت مقدس میخوام که آرزوی تو رو براورده کن و تعم مادر بودن رو بچشیم <تص> مدت ها گذشت تا اینکه آثار بارداری در شهبانو ظاهر شد هونگ, هونگ و وزیرانش از این اتفاق خوشحال بودند اما یک روز خبر ناگواری به شهبانو رسید بانود من، بانود من، بانود چی خبر شده بر. برای شما پیغامی دارم از طرف چه کسی؟ دقیقا نمیدارم. اما این دامه روی بار کبوتری بود که میخواست شما رو ببینه بفرمایید بانود من بر. سلام دوست من میدانم که این روزها خدای من چی شده بانوی من اتفاق بدی افتاده من نه نه چی... چیزی نیست پرنگیکه اتفاقی افتاده عزیزم نه سرورم چیزی نیست ولی به نظر میرسه خبر ناگوار شنیدی فقط افقد... فقط افقدر... کمی سرم درد میکنه چی شده پرنگی؟ سرم کبوتر <خبطر> نامه بر نامه ای را آورد که باید اونو به بانو میدادم بانو و داره اون نامه مکدر شده چرا نمیخوای به من بگی تو اون نامه چی نوشته بود؟ باور کنین باور کنین چیزی نیست سر <كتصیح> چی شد؟ حالم خوب سر حالم خوب نیست فرنگیک بورم برو طبیب رو خبر کن زود باش زود خبر باش, باش. سردارم کشید که طبیب به بالین شهبانو اومد و خبر داد که کودک قرار زودتر از موعد به دنیا بیاد هوان کونگ و وزیرانش از شنیدن این خبر ناراحت شدند که موادع برای بچه اتفاق بیفته. ساعتی بعد در حالی که شهبانو وضع روحی خوبی نداشت زایمان کرد و پسر توپلو زیبای رو به دنیا آورد <تصفيق> میبینی عزیزم میبینی خداوند به ما چه پسر زیبایی انایت کرده؟ بله سربرم چقدرم شبیه شماست ولی به نظر من با این همه زیبایی به شما شبیه تره <تصفيق> منه به با خوندن اون نامه حالم بد شد میدونم میتونم مهم نیست مهم اینه که پسرمون سالم و سلامته ولی هر وقت دلت خواست میتونی درباره اون نامه با من حرف بزنی اون اون نامه را جناب ببر برای من فرستاده بودن سربرم ببر بله ببر اون فهمیده که من تبدیل به انسان شدم و با شما ازدواج کردم خب تو نامه چی نوشته بود؟ نوشته بود کاش اونم صبر میکرد کاش کمبودا و سختی ها رو تحمل میکرد و از غار بیرون نمیرفت این حسرت خوردنها دیگه فایده ای نداره همینطور سربرم چون چون ببر دیگه تو این دنیا نیست منظورت چیه؟ منظورم اینه که ببر مرده این نامرم در حالی نوشته که رمقی براش نمونده بود آه. خوندن کلماتی که نشون از پشیمونی و ندامت داره برام سخت بود اونم وقتی که فرصتی برای جبران وجود نداره برای همینم هم حالم بد شد بله ولی بله این ندامت ها دیگه فایده نداره اون وقتی باید فکر این روزو میکرد که صبر نکرد و از قار فرار کرد درسته خب عزیزم بهتره تو روز تولد پسرمون حرفای خوب بزنیم. دلم نمیخواد با این حرفا و این بغض و شادی مادر شدن تو از بین ببرم. مگه آرزو میکردی که یه روز مادر بشی؟ بله، برم. خب، بگو ببینم. دلت میخواد اسم پسرمونو چی بذاریم؟ من نمیتونم. هرچی شما بگی. من برای پسرمون اسم دنگون رو انتخاب کردم. دنگون؟ آره، دنگون. یعنی شاه جنگل. وقتی پسرمون در چونین جنگل زیبایی و در کنار درخت مقدس به دنیا آمده باید پادشاهی جنگل بشه و بر چونین جنگل انبوه و زیبایی پادشاهی کنه. همینطوره سرفرم امیدوارم که دنگون هم روزی مثل پدرش پادشاه هوانگ هونگ در حکمرانی و عدالت و خیرخواهی یکتاس یک بشه. امیدوارم. خب دیگه من میرم بیرون. باید برم کنار درخت مقدس و از درخت تشکر کنم که تو رو زندگی رو و این پسر زیبا رو به من هدیه داده مراقب خودت و پسرمون باش عزیزم حتما سرفرم تولد دنگون مردم سرزمین کره خوشحال شدند و جشن بزرگی گرفتند. سالها گذشت و دنگون بزرگ شد و بر تخت پادشاهی نشست و پادشاه جنگل شد. میگن روزی که دنگون بر تخت پادشاهی نشست، پای تخت جدید پیونگیان رو گذاشت دوستان این هم از افسانه دنگون که درس بزرگی به ما داد اینکه اگه در زندگی صبر پیشه کنیم میتونیم به موفقیت برسیم و اگه عجول و بیتاب باشیم میتونیم با دست خودمون زندگیمونو نابود کنیم این هم از نمایش دنگون که از کتاب افسانه های آمیانه کره نوشته زورنگ این انتخاب و به همت جمشید سلطانی هم ترجمه شده بود افسانه دنگو تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی راوی گلچهره زرد بازیگران محمد رضا علی قربان نجفی محمد سعید سلطانی شیرین سپهراد، کام محبی کارگردان بهرام سرورینژاد افکتور محمد رضا قبادیفر صدا بردار محمد رضا محتشنی زهره زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی افسون افسانه زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانه دیگر بدون